حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردا روز بهتر بلک هوادارت چون بلدی بخندی با چشم دل ببازیم با اش دل ببندیم هجبا که دلم سبزه پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و قسمتا فردا نجواه قلب سبز پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا الو سلام علیکم الو یک دوست صدام خوبه یک دوست فردا خوبین خوشین سلامتین منم بهترم مرسی که جویای حالم بودین کلی تماس گرفتین محبت داشتین به من. سامی پخش کن چند تاشو لطفا سلام فرشید جان میخواستم بگم علیکم. که اینجا تو اتریش هم سرده ما هم سرما میخوریم ولی بله. انقدر ناله نکن دیگه یک ذره داشی من خدا نکنه شوید. خدا نکنه اینم عاد مریضی بکشید و قربونت بریز بخور عرق و آب جو قارواتی بوره و الکس سه شماره فرشید قربون مرام معرفتت که مریضم هستی پاشدی اومدی فرشید خارج خدا بگین چیکار کردم گردی سرمو رو سرمو گذاشتم روش نواط داشتم درد و دل می‌کردم زار زار چه می‌کردم یو دبولز از گرفتی گرفت. سرم سنگی شد ای بابا خورت خورت. بگی اون بر بابا صورت نداره اینو درم فقط به خودت میگام ببین یه پیاز وردار رنده کن با با قاشو قصط اینو قاطی کن ش... نگی آها اینیتو یا... بگی بکش بالا بهت قول میدم کمتر از سی دقیقه تمام سرماخوردگیت خوب میشه کما اینکه اون گرفتگی و کوفتگی و کسلی و بیحالی تماما رفت میشه عسل و پیاز قربون شکلات آخه این چه نسخه یه می دی آخه من بخوام پیاز رو رنده کنم با عسل قاطی کنم فلان اینا بکشم بالا که ترجیح میدم برم رو به قبله بیافتم بمیرم آخه چی چه, چه نسخه ی می پیچین خودت هم چی کاری کردی خداییش نه خودت کردی نکردی دیگه بعد اون دوستامونم گفت عرق و آبجو قرار قاطی بریز برو خب برو این, ش... این میمیرم چه باز دوباره <تصفيق> البته ممکن الکول زیاد درصد بالا و کمک کلا بشوره ببره همه چیو خلاصه ممنونم ازتون دمه شما گرم گفتم به حال یه خورده دورتر بشینین شما مریض نشین دیگه نخورین من شکر خدا بهترم و گفتم وقتی هم اگرم حالم خیلی بد باشه که امروز هم حالم یه ذره بد بود ولی وقتی میام پشت میکروفون برنامه شروع میشه دیگه همه چی تموم میشه بریم سر برنامه خودمون این هفته انوا و اقسام تبعیض رو در موردش داریم صحبت می کنیم امروز میخوایم از تبعیض روی محیط خونه و خونواده بگیم. و از تبعیضتی که از ایزان دلمون و پاره های تنمون نسبت به بهمون اعمال میکنن پس همینج یه سلام مخصوص با سوس اضافه اضافرض میکنیم خدمت همیون به در مادروی که هوای تعاعتقاری هاشون رو یه جور دیگه دارن و یه عرضه ادبی هم داریم خدمت اونپ در مادرایی که انقدر فرق میذارن بین بچه دختر و پسرشون که در نهایت پسر کلی پیشر میکنه توی زندگی آدم موفقی میشه و نهایت موفقیت دخترشون هم میشه که یاه یه خاصگار رو براش به بشه خ خب نکنین نکنیم نکنند. والا به خدا اینجوری درست نیست درست نیست سامی هم ببین داره سرتکون میده نچ نچ میکنه سامی هم امروز حال سرمخوردگی داره گفتم از من دور باشی یه ذره حال سرمخوردگی بزناشو. داره بهتر شدی یه خردام میخواد خودشو لوس کنه میگه چطور این همه باز فرشید زنگ میزنین هم میگین حالت بده این هم میگن برای سامی هم مثلا حالا زنگ میزنین حالشو بپرسین دیگه جلالم فکر کنم یه خورده حال بعدی داره چراغم هم هم اصلا زنگ میزنین از همه بگین چقدر حالتون بده آخ آخ آخ آخ, آخ به همه اینطوری بگین خب اینطوری فقط به من نگین اینا دلشون میخواد حسودی میکنن دیگه آقا برو بریم برو, برو. ام خانم‌ها آقایون دختر خانم‌ها آقا پسرها خصوصاً اسکیبازاش عرض کنم که دیروز خبری توی رسانه منعکس شد که به حمدالله واحدهای اسکیباز گشت ارشاد هم با چوب اسکی و تشکیلات توی های اسکی مستقر شدن و وظیفه خطیر خودشون در تضمین امنیت اخلاقی جامعه دارن عمل میکنن فکر کن آقا توی پیست اسکی با چوب اسکیو مدن مستقر شده گشت ارشاد مثلا دختری داره با 80 تا سرعت داره سر یال اسکی می‌کنه میاد پایین یو می‌بینه سمت راستش خواهر با چادورسکی داره شونه به شونه میاد مثلا اون وصل هم اینجا داره بهش میگه خانومم خانومم حجاب تو درست کن داره با سرعت ها اینجوری پیش براه آقا چند وقتی که وایده گشت ارشاد اسکی رو آب و نمیدونم گشت ارشاد کایت سوار و گشت ارشاد بانجی جامپینگ و اینا هم دیگه راه اندازی میشه دیگه به خدا والا فکر کن گشت ارشاد بانجی جامپینگ داشته باشیم مثلا از روی پل با صدم تناب که به قوزک پادبسی پریدی وسط زمین و آسمون مثل یویو یو داری بالا پایین میری بعد گشت ارشاد بانجی جامپینگ هم پشت سرت چیرجه زده اومده پایین بعد هیا از بغلت رد میشه بخواد تذکر بده بعد نمیتونه دیگه خانم حجابتو حالا حجابت حجاب خانم اینجوری میشه خلاص این تصویر شد کمی دور از زن و خنده‌دار باشه ولی با همین فرمون دوستان برن یه تا چند سال دیگه عادی میشه برامون دیگه یه زمانی هم میگفتن گشت ارشاد اسکی باز همه میخندیدن این راه انداختن شد الان دیگه خنده داره فرشی جان سلام میکنم بهت دوباره این تو و گلی و من رو به اون مرده که نفروختی خیلی شکر میکنم که تا خودت تبعیز قائل نشدی و فقط این میلیون میلیون دلار ها رو از خودم قبول میکنی هبا تو ایبار. دارم بابا این قدم نگو این چکای من برگشت خورده نرسیده میرسونم به دیگه تبعیض قائل نشو فقط متشکرم خدا نگه دارم بروید ما مختلف شما هستیم دیگه چک دیروز بسول شد اتفاقا ایو جان آره واقعاً ولی اذیت شدیم ما این آخریه این سر چک آخریه یه جوریه ما کن که دیگه به وقتش ما چکو بریم بانک دیگه تو حساب پول باشه ما دیگه هی مصدب اوقات شما نشیم هی نگیم آقا چی شد آقا پول می‌خوایم نشده بچه‌ها هم جی رو هوا خب دیگه به هر حال چیزه دیگه جلال و سامی و برای بچه‌ها همه سلام میرسونن سامی هم میگه کریسمس و سال نو و اینا بعد دیگه خودت هر گلی زدی به سر خودت زدی دیگه دیگه نمیدونم ایدی بچه‌ها فراموش نشه Yes. خانم آقایون دختر خانمه آقا بسرام میدونید که معمورین نیروی انتظامی و ضابطین قضایی ایران وقتی که برحال لازم باشه و به صرف خیلی خیلی هم با جذبه و شدید الاخدامن میدونید دیگه الان خبر رسیده دوستان رفتن یه مرکز خرید رو مرکز خرید ظاهرن حالا یه تخلفی کرده بوده دیگه نمیدونیم چی بوده اینو پولام میخواستن بکنن مونتاژو خیلی اعصاب بودن میخواستن اقتدار خودشونو نشون بدن زدن مرکز خرید و با کل مشتریایی که توش بوده پلم کردن الان گوش کنید این صدا رو آره، از تلویزیون ایران پخش شده مشتری بودیم. اساساً هشتادی بازم اومدیم اینجا دیوونمون کردن هرچیزی هر می‌گین با هرجا زنگ می‌زنید آتیش زنگ زدی زنگ نمیاد شما مشتری من برای دانشگام اومدمم خرید کنم نفر من زنگ زنم حالا من چاله قامیش کاریش نمی‌کنم یعنی علم محلت ننه شوان بیاد اینو باید دارو پولام کنن؟ یعنی چی آخه آقا تو نمیدونی گریه کنه بخنده آقا بابا مردم میدونن شما قوین شدیدین خیلی دیگه نیازی نیست بگیرید بشون کنید تا بفهمن ایمان بیارم به شما ما گشت ارشادتون رو دیدیم ایسپاز رو دیدیم باتوماتون رو خوردیم که شدیم خلاص هر بلایی بگی از شما به ما رسیده دیگه بهمون نکنید دیگه طاقت اینجوری نداریم به خدا ملت داره خرید کنم پلمبشون کردم بدبختیو تو خودت بلد. نماد سکسیسمی برنامه سکسیسمو ادامه بده آقا یه خانم زنگ میزنه نیشه باز میشه سلامه رو خوشگل مشکل جواب میده خوه. حالا اگه یه سیبین کلوفتی مثل ما سلام بکنه خب سلام همین تمام شد مرسی زنگ زدی بای فارشی چطوری خوبی به درام بگم که نظرم نذارم پیمان فرستادم که بگم که حفصه خیلی خیلی خیلی خوب باشه آخی. برم که من اینجا تو چین زندگی میکنم ایوه. من میخوام موو کنم قطب چون میگن اونجا گرمتر از اینجاست قربونت برم ایوال مرسی که زنگ زدی برو شما جایگیری شدی بگو ما هم بیایی ما اینجا خیلی سرده مرسی زنگ زدی سلام برسو قربونه من بارها گفتم تو این برنامه اصلا تبعیزی ما نداریم بازم تحکیز میکنم اما در مورد آب و هوام هم یه خبر خوب دارم یه خبر بد خبر بد این که دیروز و امروز هوای تهران زیر خط تنفس بود آلودگی هوا خیلی بالا بود خبر خوبه هم که از امشب بارندگی شروع میشه توی تهران و از این آلودگی خیلی کم میشه حالا اینکه بارش به شکل برفه یا بارون دیگه بستگی به این داره خونه شما سمت مونیری و راهن باشه یا سمت ولنجک و نیاورون دیگه فرق میکنه دیگه به هر جوی که هست خیره و آلودگی این روزهای هوای تهران رو تا حد زیادی برطرف میکنه این از این امروز و امشب عراق و ارومیه به حدود منفی 5 درجه میرسن و از اون طرف ساکنین دو تا جزیره خارک و ابو موسا میتونن امشب برن اثر رو پشت بون با پشت بند بخوابن البته بارون نیاد یعنی میخوام بگم اینقدر توی این مملکت تنوع آب و هوایی داریم دم کشورمون گرم واقعا ایوا از رد اینجاست هنوزم روی میزه بختی نیستی حالم به هم میریزه آروم میشم با خیالت همیشه میدونم برمیگردی خیالم راحت میشه دستم سرده پیه دوستای تو هم هر میرم فقط دنبال تو هم میخوام تو رو خواستانت ما رادیو راژیو پس شماره 948 امروز دوشنبه 23 آزر 1394 میره سراغ تبعیزهای خانوادگی وقتی پسرها، ها و ها ترجیح داده می شوند بیامی شماره 948 بیامی 948 بدانید و آگاه باشید تبعیز هایی که در جامعه وجود دارد و یا از سوی حکومت به شهروندان اعمال می شود هیچ کدام به دردناکی تبعیزی نیست که در خانواده و از سوی عزیزان آگاهانه و یا ناآگاهانه بر ما روا می شود. پس چنانچه از طرف همسر و یا پدر و مادر خود و در خانواده مورد تبعیض قرار می گیرید همانا از دردناکترین و سخت ترین نوع تبعیز رنج جمعی از توی خونه باشون مثل بچه اون یکی ننه رفتار شده ها و یا به خاطر دختر بودن زیر آوار باید و نباید دفن شده ها و کلن از دست تبعیزهای خانوادگی جون بلب شده ولی صداشون در نیومده های رادیو هست فرده دا باشی. سلام علیکم من تبریک قائلم، بالا برای به تک تکتون سلام کنم. سلام حمید جون، سلام شهر میجول، سلام جلال جون، سلام شهرام جون و کامران و فریدور عزیز. من به زبان آذری به همتون بگم که ما رادیو فردا رو خیلی دوست داریم. بی رادیو فردانی پس فردانی چخیی دیغ، خودیا هستم از خای. به به، چخ ممنون آللارا نارماсыз. فکر کنم ای درست گفته باشم تو این مایه ها ولی شراگیم رو نگفتی ها. گفتی بدون تبعیض میخوای به همه سلام کنی به همه سلام کردی الا شراگیم الان فکر کنم این بچه ناراحت افتاده یه گوشه همینجوری غم بغل گرفته الهی الهی الهی اما یکی از موارد آشکار تبعیض توی خانواده تاتقاری‌ها هستن. اصولاً توی هر خانواده‌ای که بیشتر از 4 تا بچه داره، یکی از این بچه‌ها که معمولاً آخرین بچه‌ام هست، بی‌جهت عزیزتر از بقیه از پیش‌پی پدر مادر. یعنی اصلا هوای اون یه دونه بچه رو یه جوری ای دارن. یعنی صبح که میخوان بچه ها رو مثلا بیدار کنن، اگه بابای خونه همه رو واسه ما چک و بیدار میکنه که برن مدرسه، اون طعتقاریا رو اینجوری بیدار میکنن. هوشنگ جان، قشنگم، بیدار میشی بابا؟ صبح شده، مدرسه دیر میشه ها. بیدار نه خوابت میاد. آخه بیدار نمیشی؟ باشه، بخواب. بخواب، من خودم میرم مدرسه صحبت میکنم. طعتقاریا اینجوریان دیگه. یا همیشه آقا اون گل وسط هندونه هست. اونو مامانه میبره برای هوشنگ. حرفم بزنی میگه هوشنجان از این که حسته هندونه بیاد زیر دندونش بدش میاد. آخیش. حالا بچهای دیگه هم پوست هندونهم میذارن جلویشون بعد بخورن بیچاره ها. هیچ که نمیدونه دلیل این علاقه شدید پدر مادر به بچه ته چیه. یا مورد داشیم همه بچه‌ها رو فرستادن مدرسه دولتی کلا ها با چک و لگد مدرک گرفتن بعد ته رو مثلا با زدوبند و آشتابازی و اینا فرستادن مدرسه سفارت فرانسه. بچه تو محیط خوب درس بخونه زبان خارجشم اش هم اوکی بشه در آینده کسی بشه بر خودش حالا جالب اینجاست خیلی وقت آخرشم بچه ها همه دکتر مهندس میشن و تاغقاریا بعد بری از تو جوب درش بیاریه. دیدیم که میگی ما علا فشید جون سرابتو با برنامهت باید بگم فرشید من بچه آخری هم ولی هیچ تبعیزی بین ما نشدم نشدند پدر و مادرمون همون در یه سطر بودیم دختر پسر بزرگ بزرگ بزر کوچیک آخری اولی هیچ فرق نداشتیم ولی تبعیزی که همش شاهدش بودم این بوده که ما میگیم تهران بچه شهرستانی به حساب میاییم بچه‌های تختم تشف میارن شهر ما بازم ما بچه شهرستانی به حساب میاییم نمیدونم این حکمش چه کنم ختم از پراک بیای اینجا بشید بچه کشوری یا قاره ای نمیدونم الزم ازسفه ها دوستت دارم بر... این نکته آخرخری در خیلی نکته مهم می بود ارونت و بر... مرسی من هم دوستت دارم ولی راستش ببین هیچ بچه تعتقااری نمیاد بگهم مثلا پدر و مادر من بین من اون بقیه فرق گذاشتن. اینه که الان حرف شما که نمیشه که به حرف شما نمیتونین بعد ویسین پدر باید پدر در مادر او وایسین برادر خواهر های دیگهتون یعنی برادر خواهرهای بزرگترتون اون رو تماس بگیرن، در این مورد چهادت بدم در مورد بحث تهرانی شهرستانی هم من نگرفتم دقیقا منظور تو ولی خب یه تهرانی همیشه تهرانی میمونه دیگه حالا هر جا بره میشه تهرانی ها منطقه... حالا چه تو تهران باشه تو شهرستان ولی اینکه به بچه های غیر تهرانی یعنی ساکن باقی اوساننا کسی بخواد با یه لحنه بدی من میدونم اون لحنه که میگه شهرستانی و این و لحنه خیلی بده اونو ما نیستیم والا شما باید لحنه بدی بهشون بگی تهانی ته تر ته اینجوری مثل. آه. این هفته گفتیم از تجربیات تب ایزامیزی بگین که سرتون اومده مثلا همین که به اشاره کردیم توی خونه تحتقاری نبودین و باتون مثل کوزت رفتار می شده. یا چه میدونم چون زن بودین برای خیلی کارا و خیلی چیزا به دردسر افتادین مثلا چه میدونم مدیر دو تا شرکت بودین اما هنوز برای بیرون اومدن از کشور باید از شوهرتون اجازه می گرفتین یا چه میدونم به خاطر دین و مذهبی که داشتین نتونسین شغل دولتی پیدا کنین یا دیگه مثلا چه میدونم مثلا توی خارج از کشور زندگی میکنین و وقتی یه جاهایی رفتین وقتی فهمیدن ایرانی هستین بهاتون یه جوری یه جوری برخورد کردن خلاص گفتیم این هفته سرتون رو رو شونه ما خواهدتونو سباک کنین دیگه چیزی رو تو دلتون نگه ندارین رفتارهای تب ایزامیزی که تو زندگی دو بهتون تحمیل شده رو بیریزین بیرون یکی دو روز همه زنگ زدن ایرانیا از طبیز و فلان و نالیدن همه گفتن آی ما بیرون ایرانیم فلانیم بیساریم ما بله. خودام یه ایرانی ام، هم ولی همه اونایی که زنگ زدن از تعویذ گلگی میکنن از تعویذی که واسهشون انجام شده، یه خورده به این افغانی های بنده خداها یه خورده فکر کنید که ما چه بلایی، علاوه تعویذی سرشون آوردیم تو ایران و هنوزم داریم میاریم، آ. نه اینکه بگیم آوردیم تمام شد رفت. هنوزم داریم میاریم. یه خورده اول این چوبای ترکره به خودمون بزنیم بد نیست. بله نه حرف شما کاملا درسته یه سوزن دی چیزی به خودمون بزنیم بعد یه جوال دوز به دیگرون مرسی از یاداوریتون واقعا چرا ما اینقدر بعضی اون نسبت به افغان های ایران تحبیز قائل میشیم خب تو اروپا و آمریکا هم سرمون میاد دیگه میگن دنیا داره همینه تو فیسبوک رضا ام... کامنت داده گفته رضا هستم یک شنونده افغان ساکن تهران خواستم بدونی به شهروندان افغان کارت آبربانک بانک تعلق نمیگیره فقط به این خاطر که افغان هستن فکر کنم این از تبعیض گذشته و نجات پرستی محسوب میشه بله بله دقیقا همینطوره تبعیض نژادی میتونه باشه نجات پرستی از نظر ما هم اگه کسی به صورت قانونی در ایران سکونت داره باید بتونه از خدماتی استفاده کنه مرسی که اطلاعات دیدی رضا جان البته خب نباید به دل بگیری دیگه حکومت ایران حقوق اولیه شهروندان خودش هم رات نمیکنه والا به خدا توی اینستاگرام شقایق گفته تبعیض تو ایران مترادف زن بودن از هر چی بخوای بگی تبعیزی برای ما هست چه جامعه و دولت چه توی خونه؟ اون که بله مون تو چون ما همین چند هفته پیش خب دو هفته در مورد سکسیزم برنامه رفتیم خب اون هم تبعیض جنسیتیه دیگه که میشه سکسیزم یعنی تبعیض جنسیتی رو فارسیش سکسیزم کلمه انگلیسیشه و خب دو هفته راجبش صحبت کردیم برایم یه مقدار دیگه کمتر بهش اشاره کردیم ولی واقعا آدم اسم تبعیض که میشنوه ناخوشاگاه یاد زن در ایران میفته اینقدر که این دو تا واژه تو ایران به هم گره خوردن مهسا گفته سوگولی خونه بچه اولی و تعتقاری ما وسطی ها همیشه مورد تبعیض قرار میگیریم آقا بچه اول کجا سوگلی کی گفته معمولا سیر علاقه والدین به بچه هاشون از بزرگ به کوچیک همچی زیاد میشه به اون تعتقاری که میرسه به ماکسیموم خودش میرسه باید ما اینجوری شنیدیم آلا رو تو نمیدونیم آلو. شاید هم های متفاوتی هست شما میتونید با همون در تماس باشید از راه های ارتباطی مختلف با همون تماس بگیرین برامون کامنت بذارین و از تجربیات تبعیزامیزی که دارید و سرتون اومده اتفاقاتی که براتون افتاده یا خاطراتی که دارید از مسئله تبعیض برامون بگید و اگر خواستید با همون در تماس باشید فردا.com ایمیل ماست دوسف 420 6874150 و, و ماست در فیسبوک گوگل پلاس کلاد، اینستاگرام میتونید ما رو فالو کنید برامون کامنت بذارید و همینطور در اپلیکیشن رادیو پاسوردا در آی در موبایل ها و موبایل های آی او آیفون و آی گفتم اندروید نداریم اونایی که اندرویدین یعنی این کارا بسازن یه ما ما که بلد نبودیم که اونم فرهاد برامون ساخته در اپلیکیشن آیفون میتونید صداتون رو ضبط کنید برامون بفرستید برنامه‌رو بشنوید رادیو فردان به صورت زنده میتونید از اون طریق بشنوید تلفن‌های پیامگیر ما 20420 2211 24 133 و سه و اونایی که از داخل ایران تماس 21 79, 39. ام میخوام من گم از اونجا که ما مشکلات مملکت خودمون رو کامل حل کردیم دیگه مشکل معذلی کلا نداریم و اینا بعضی اساتید و بزرگواران همایشی برگزار کردن که این مسئله تبعیض نژادی و رفتار با سیاه‌پوستا توی آمریکا رو هم حل کنن برای همین یک همایشی ترتیب دادن تعدادی از عزیزان آفریقایی آمریکایی رو هم دعوت کردن جناب رحیم پور از قدیم هم قبول زحمت کردند که بهشون یاد بدن چجوری مشکلاتی رو که در جامعه آمریکا دارن حل کنن عنوان سخنرانی ایشون هم این بود پیام, پیام به سیاهان آمریکا چگونه انقلاب کنیم فرازتی از بیانات ایشون رو لطفاً بشنوید؟ فردان آگاهی و سازماندهی کافی میان سیاهان در آمریکا و اینکه هنوز آماده نیستید قربانی بدید. ملت ایران ده ها هزار شهید داد تا توانست از رژیم دiktاتوری وابسته به آمریکا خلاص بشه. شما تصور بکنید روزی رو که در خیابان‌های ایالات مختلف آمریکا در یک روز هزار سیاهخوست کشته بشه. اگر به چنین مرحله از شجاعت رسیدید، اگر توانستید چنین حزینهایی بدید، یعنی هزار سیاهخوست در خیابان‌های ایالات متحده آمریکا به مسلسل بسته بهشن ولی خیابون ها رو ترک نکنند اون وقت خواهید دید که چگونه حقوق شما به شما خواهد رسید بله یعنی خود مالکمیکس و مارتین لوتر کینگ هم دیگه تا این حد انقلابی نبودند حالا استاد راینپور از قدی که آتیشش ظاهرا از تمام رهبران جنبش های اعتراضی در طول تاریخ آمریکا تنتره توی ذهن خود شده رهبر و لیدر و مغز متفکر جنبش های اعتراضی سیاه‌پوستای آمریکا ماشاءالله دستش به کم نمیره به کمتر از قیام خونین و خشونتبار بار و اینام رضایت نمیده رن راه حل صادر فرمودن بریزین تو خیابون هزار نفر مثلا روز اول تو خیابانای آمریکا باید کشته بشن تا حکومت آمریکا سقوط کنه ها چی میزنن اینا من نمیدونم اون سیاپوسای آمریکایی رو شما چی فرض کردین آخه خودشونو چی میبینن نمیدونیم دیگه خلاصه یک همچین همایشی با چنین هایی و با حضور چنین اندیشمندانی هم داره تو مملکت برگزار میشه محض اطلاع گفتم در جریان باشین که بخشی از پول بیت المال کجاها داره خرج میشه نگرانی ما از آدمی آدمیست که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد کامران ملکموتیی سلام سلام فردی جان سلام همگی چه خبر از تازه های سینما؟ امروز تحریف دو تا فیلم کاملا مشخص شد و یکی اینه که نت به کارگردانی احمد رمضازاده که تا امروز دو بار تاریخ نمایشش تغییر کرد اما امروز بالاخره اعلام کردن که چهارشنبه اکران میشه دومی هم فیلم در مدت معلوم به کارگردانی وحید امیرخانی که اونم از چهارشنبه به سرگروهی استقلال به نمایش در میاد بخش خاصی از روی فیلم رو با هم بشنویم بعد من بیشتر توضیح میدم بشنوید با بی بی سی کار میکنیم بله با بی بی سی هم کار میکنم با سی ان هم کار میکنم با فاکس نیوز کار میکنم والا وی دی سی هم کار میکنم با یو اس پی هم کار میکنه با ال سی دی هم کار میکنه با همه چه کار میکنه سرکه بخور سرکه فوری بدنتو میخابونه میخابونه بالا به تو عذاب او پایینم که این ستاکان تا هست نه آقا گروسی نه بینشون آيبه میگم سعی کنم یه وقت با دقتوانو بکنم چون جانو آقا سر و شب تو روزا کوله گوله میگیری نه حواست هست نه حواست حالا دیوونه چیزی شدی بله بخش از صدای فیلم در مدت معلوم ساخته وید امیرخانی رو شنیدیم فیلم از که کومیدیه کام رو ناده؟ درسته فیلم کومیدی جواد عزتی ویشکا سایش هومن سیدی و اکبر عبدی بازیگره اصلیش هستن موضوع هم که از اسمش معلومه در مورد سیخ است بسیار از تازه های موسیقی چه خبر؟ امروز اعلام شد که یه ورزشگار دیگه به جمع هنرمندان در علاقه خانندوها پری نه رزوز اگه بخواد بره اون برد بره, بره, بره بشه اونا فقط باید هفتاد میلیمتری متری و آی مکس بازی کنه تو پرده معمولی جا نمیشه. نه امروز اعلام شد که علی ابوالمصری مهاجم تیم ملی بسکتبال بعد از بازنشستگیش در عالم ورزش قرار که کار خانه‌دگی بکنه به زودی اولین آلبومش رو به بازار میده. امروز هم که از آهنگ‌های آلبومش به عنوان مصوره منتشر کرده به اسم از روی اترت. از روی اترت، از روی اترت یا از روی اترت کودم یکیه، نظرت کدوم درسته. کارم اترات درستیه، آقای آره. شریم اترات نمی‌دونه. بیش نمی‌بینیم، بیش نمی‌بینیم، ما رو چی می‌گیدی؟ باش، تا فردا خدا فز. تا <تصح> فردا خدا می‌شه. میزانم پرسه با فکر تونمیشم دیگه خسته از روی اترات. از ری از ریز چشمای بسته ی لحظه باشندت می به زندگی عکس یادگاری از خندت برام بگیر مرزه این حسم به تو میشه شه دیوونگی هرچی که تو بخوای هرچی تو بگی نه نمی به تو بگم نه میتونم به تو بگم نه از اینجا میشم آدم تنها ن نمیتونم به تو بگم نه نمیتونم به تو بگم نه نمیتونم بی تو برم از اینجا میشم آدم تنها بی‌او سلام 23 بی کوسی دو شنبه شب را ضمن وحشت از شلیک اختام نافشکن روسی به سمت یک کشتی ترکیه در دریا ایجی با آمولوی بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می‌نماییم. احضار دوباره مدیر مسئول روزنامه اطلاعات به دادسرا به خاطر چاپ عکس و مصاحبه‌ای از محمد خافتمی و نظر ناظران که خوب حالا این خاتمی تو خونهش نشسته هیچ کاری نمیکنه اینا انقدر ازش میترسنه یه کاری میکرد چی کار میکردن؟ اظهار نظر آیت الله یزدی مبنی بر تشریفاتی نبودن روحانیت در ایران و سؤال کارشناسان که اوه اوهاجی تا حالا فکر میکردین تشریفاتی از این بلاها رو سر مملکت آوردین از این به بعد میخواین چیکار کنیم؟ و حمله یک معلم هم و حمله به یک معلم در فرانسه با تیغ و دایه کابزه به وی که داعش پشته این حمله بوده و گمان زنی ها این الان ای از خراغا بقال بره بزنه زیر گوشه علی آقا نجار میره میگه داعش زد زیر گوشم مهمترین اناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدند اینک مشهور خبرها با همکارم بل با سلام، در بیست و 23 جلسه دادگاه بابک زنجانی، قاضی دادگاه رشوه های شده از توی زنجانی به متهم ردیف سی این پرونده را اینگونه اعلام کرد کادوی یک میلیاردی زنجانی به مناسبت عروسی دختر متهم ردیف سی اعطای یک ویلای پنج میلیاردی به وی در شهرک غرب اعطای یک باب ویلا در کیش اعطای یک دستگاه بنز اسپانصد و چند مورد دیگر در همین رابطه یکی از کارشناسان با سلیغه ی کشور زمین تقدیر از با بابک زنجانی در انتخاب نورشوه هایی که به افراد می داده افزود بهتر است اگر کسی اختلاص هم می کند فیک و با سلیقه اختلاس کرده در انتخاب اقلام پرداختی خود به عنوان رشوه نیز سلیقه لازم را به خرج دهد. پایان مشروع اخبار ای بله همکنون از طریق خطوط تلفنی در خدمت کارشناس مشکل گشابگی برنامه جناب آقای مشکل گوش هستیم تا مشکل ها اوتمام را گوشاوی کنند بله در مشکل گوش خوبی شما چه خوب؟ بله بنده خوبم وقت در خدمت شما هستم مشکل جان اگه این گزارشی رو که الان همکار بنده خون رو شنیده باشی بله ب... این آقای زنجانی خوب ظاهرن رشته می داده چه وضعی آقای بله البته در گزارشی که همکار شما خواهر قناری خون خواهر قناری چی با مشکل بل بل اون بل بل و غناری رو هی با هم گاتی می کردم چه رب توی داره بل بل و غناری به هم اوکی حالا ولش کن چی شده حالا بگو بله در گذارش اینشان گفته شد که یک بلی بنز ایس پانسد به این برادر اختلاف کرداده شده که خوبی نشکل اشکال داره دیگه یعنی ش... اشکالش چی؟ ببینید بر اساس تحقیقات مم. واحد بنز وزارت خب خب. ایشان خودش یک بنز SSC 150 داشته مونتو برادر زنجانی خب. بنز SSC 150 ایشان رو گرفته و یک بنز اس 159 ایشان داده لیگ. ولی آن چی شد نمایشگاه ماشین خب اینجا میشکیل ولی آخره داده بیشیه. شما دقت کنید از بنز SSC 150 یا SSC 500 ولی آخره فقط 150 با... تا, تا فاصله یه. ما باید دقت کنیم که حقی از این متهمین اینطوری خیلی بلد. واقعا خسته نباشید خب بقیه‌اش چی من با عروسی دختر همکارم به جای کادو میرم تو مجدونی رو سن جوک تعریف میکنم بعد بله بابک زنجانی گرفتید یک میلیارد کادو داده واسه عروسی دختر این آقا میگم برادر ای. زنجانی حمدالله دستش به کم نمیرافتان دیگه عجب بلد. خب بقیه‌اش چی یعنی ویلای 5 میلیاردی شهرک غرب بود کیش و فلان خلاص ندارم حل عل... فرمودید شمال ویلا میگم ویلای 5 میلیاردی شهرک غرب ویلای کیش که رشولده بوده به این آقا اینا چه متاسفانه علو. صدای شما رو ندارم ولی ال میش رو متاسفانه نمیتونم بم در هر سرت چون خیلی کار دارم دیگه علو. لای 20 صدا بهشیبات نخواستیم خودش حرف فکر کنم بهشه گرفتن شما با تشا کوک توجه شما تشابی دیگد و برنامه ایگ خدا میگه دا. آاران خدمتتی که بزرگترین تبعیض زندگیمو وقتی دیدم که دم در اتاق استاددم یه ساعت و ایستادن یه سوالی یه دقیقه ای بپرسم. بعد دختره اومده هم کل میره جلو اددهیه رو 20 دقیقه بعد اولش پرسید. 40 چه دقیقه دقه سوال از راه های متفاوت بررسی <تصفيق> کردی یه ساعت هممده باششه. بعد بعدش برگشته به من میگه بیابیم مغزم و خوردی چی میگی تو؟ و این خیلی تبعیض رایج برقال تو دانشگاه؟ ها. قبلن هم عجبش حرف زدیم حالا تو هم البته خب بخشناس نیستی دیگه وقتی میبینی یه خانمی داری سوال میکنه از استاد زار تمام موقع خودتو میندازی و ساعت ای استاد ببخشید استاد ببخشید میکنی میرفتی یه ساعت دیگه میامدی اینجوری برخورد نمیکرد با ایه. اما خانم آقای این دختر خانم آقای پسرها اجازه مسئله که ما بچه های خوب و با ادب ایرانی باش اصلا بزرگ شدیم اجازه اجازه گرفتن یعنی تو مدرسه هم که میخواستن بری زنمون توی مینی بود فکستنی ببرنمون یه دوری بزنیم مثلا برگ عبورمون اجازه نامه بود اجازه نامه ولی بود و بس حالا شما ببینین در همین زمینه اجازه تو خانواده بین پسر و دختر چقدر تبعیض است. یعنی دختر خانواده نه که ناموس به حساب میاد خونه دوستش میخواد بره باید اجازه بگیره نیم ساعت دیر میخواد بره خونه باید اجازه بگیره شب میخواد خونه خالاش بمونه باید از 17 مرجع قانونی اجازه بگیره خلاص فقط یه آب خوردن و نفس کشیدن میمونه که اجلتا بدون اجازه قابل انجامه اما برای شازده پسرها این دایره اجازه خیلی هم با اجازه نیست که هوچ بی اجازه هم هست در خیلی از موارد طوری که اصلا اجازه گرفتن برای دیر رفتن خونه یا پیفنیک رفتن با رفقا هرچی بالاخره بر پسرای خونه تو مایه فوش هست یه اجازه بخوام بگیریم اینه دیگه از این تبعیز ها چیز دیگه هم هست نیست دیگه ای حالا بی خاص نداشی. حالو. اما از امازبان یه تا ایزه معرفی بگویم که کانکت بیشتری داره حتی امتحان ما انجام داده. بگو بگو. اگه بیش ایشون بین میشه؟ منو. یه موردی دو ما بامر سیلی در ابرونه برن رفیم که دو نفر پخش نکریم. ممنون نه دیدی زود رسید کردی دیدی پخش کردم تو. به خدا من عوضتون رو دوست دارم اصلا نمیدونم این حرفانیست که صدا گرفته و پلیپ و عبرو و سیبیل و غبغب و شیکم و این چیز رو برای من اهمیتی نداره اخلاق دقوب باشه من پخش میکنم مهم اخلاقه بقیه چیزان آدم عادت میکنه کی عشق سوزونده چی عشق سوزونده کی؟ اون کیه؟ تعبیز نزار، چی رو داری می‌بینی؟ من باب های خانوادگی بین دختر و پسرا، حالا البته اینکه رفتار خانما با آقایون متفاوته که خب قابل درکه، ولی شما به عنوان دختر خونه توی یه مهمونی یه چیز خنده‌دار که بشنوی بعد قش قش قش از تا دل بلند بخندی، باعث میشه همه زل زول زول بهت نگاه کنن تو دلشون بگن واا، چی دختر پررو واقعیه، کی میخوادی اینو بگیره؟ ولی حالا برای مثلا برادر شما ولادادن خنده‌های انفجاری نشونه مردونگیه. حتی یک افتخار بزرگ به حساب میاد وای ببین پسرم چی مردی شده واسه خودش. با هر زرف ظرف کریستالای دکور به ارتعاش در میاد. ماشاءالله. اینه که بله. شما به واسطه دختر بودنتون توی رفتارها و عکسولعمل‌ها و حتی هاتون هم با تبعیض مواجهید. متأسفانه. فری غریب سلام چه خبر ها؟ سلام سلام به همگی فرشید جان امروز 23 ماه آذر سال روز تولد ناصر اجازیه که چهار سال پیش از میان ما رفت بزرگ مرد ورزش و فوتبال ایران که به خاطر صداقت کلامش همیشه تو قلب مردم بوده بله. حتی تو قلب غیر فوتبالی ها درسته. اگه اجازه بدی بخشی از مصاحبه شو با سیما که چند هفته قبل از مرگش داشته بشنبیم بشنبیم من احتیاج ندارم به این آقایونی که میان حرف می‌زنن خودم بالاخره چیزهایی دارم بتونم تقضول کنم خزینه مالجامو و ماشینی دارم هرچی دارم بالاخره می‌فروشم و خودم انجام میدم احتیاج به کسی ندارم فهمیدم به اون شعری که میگم من اون گولدبرگ مغرورم که نمی‌میرم ذبی آبی ولی با ذلت و خاری پیشابنم نمیگردم روح شاد ناصر حجازی دوست داشتنی اما فریباز تیممون امروز بازی داشت چه خبر از بازی و حواشیش آره پرسپولیس پولیس یکیچ برد فرشید توی آزادی گسترش پولاد تبریز اومد ششم و بعد از مدتهای نفسی کشید به به. از حواشی مهم نشم آره این بود که استقبال کم فرشید چهار پنج هزار تا تماشاگر بیشتر تو ورزشگاه آزادی نبودن درسته اینا مهم نیست مهم برده که دیگه باید بعضی گوششون رو برای برده آماده کنن دیگه از الان تا آخر فصل همش از این خبرای برد داریم آقا آماده باشید دیگه درسته بله. درسته اما فرشید یه چیزی هست باید منتظر بوده دید که آیا این برده یکی جا شکننده ادامه داره یا نه امیدواریم که ادامه داره اما فرشید دار راجب <تصفح> اما راجب استقلال بگم سه تا استقلال داریم تو لیگ دو تاشون بالای جدولن استقلال خوزستان اول استقلال تهران دومه یه استقلال آوازم داریم که تای جدول 16ام یعنی سر ته جدول آبی شده الان درست اصلا با این وضع بهترین جا برز الان همون 6 که ما هستیم بعد آخر فصلی میریم اون بالا یعنی اونجا که باید باشیم حالا میرسیم ان شاء الله آره امیدوارم آره. آرزو ابنیست خرج جان یه خبرم بود امروز از ورزشگاه سامن مشهد که بین طرفدارای تیم سیاه جامگان مشهد و زوباهن استان ورزشگاه درگیری شدید پیش اومده که نیروی انتظامی مجبور شده واسه جدا کردن این درگیری و این حبادارا از اسپره فلفل استفاده کنه او او اوزای ورزشگاه همون فلفلی نبود اینجوری نبود که دیگه اونم فلفلی شد خدا خیر کنه ممنونم از زدفری برز غریب باید خدافزی میکنیم تا فردا تا فردا خدا نگه خب تو چند روز گذشته یکی دیگه از آثار تربیتی نظام مقدس بر نسلهای جدیدتر مشخص شد و اونم اینه که بعضی از خبرگذاری ها گفتن که تعدادی از زائرین اربعین والدین پیرشون رو برداشتن بردن کربلا و اونا رو اونجا جا گذاشتن تا از دستشون راحت شن ما که والا عارضو میکنیم این خبر دروغ باشه و تکذیب بشه اما در هر صورت همین الانم در حال هنجیم آقا دیروزم تو یک بخش از برنامه گفتیم واقعا من نمیدونم چه میشه توی سیستم آموزشی و تربیتی از صبح تا شب هی تو سر بچه بزنن که بل والدین احسانا بعد یهو یه نتیجش اینجوری بشه البته ما خ... نمیدونم خیلی الان ماجرا رو نمیخوایم هم بزنیم شما هم نزنید چون به هر حال مقام معظم رهبری باقی این مدیران الان دارن در جپهای حق علی باطل با علوم انسانی می‌جنگن و اینجور مسائل وقت نداره و حواسشون پرت میشه تیرمیر میخوره بشون میوفته تقصیر ما والله ولش کن آیا از داشتن پدر و مادری پیر در خامه خسته شده اید؟ آیا ردخ و فتخ کردن امور والدین سالمندتان امامل شما را بریده است؟ آیا دلتان میخواهد از دست آنها برای همیشه راحت شوید؟ فقط با والد گوریزان تماس بگیرید تا با اعزام بدون بازگشت والدینتان به مناطق زیارتی سیاحتی؟ شما را در ثواب این اقدام گریزان شریک کنیم والدگوریزان برای جوان تر کردن جامعه می کوشند والدین دست و پاگیر خود را به ما بسپارید تا آنها را چنان برای شما گم کنیم که دیگر اثری از آثار آنها پیدام نشود گریزان در خدمت تمامی جوانام آزابیجو گریزان با سالها سابقه در زمینه گم کردن والدین شما با وابلد گریزان با والدین خود برای همیشه خداحافظی کنید وابلد گریزان بسی جان قبل از انقلاب همه مقایثه با سوئیس و انگلیس و یه قدام پایین تر نمی آمدیم ما. ما همه اونا همه چی دارن و برین و آقا ببینین و ما چی نداریم بله حالا راست میگی همون سودان و سومالی و گروندی و گروندی و با هم اونا مقایثه کنیم گامبیاهو باز یه ذره از اونا بهترین نه دیگه روزگاره دیگه آره دیگه موقع چه عشرت میخوردیم چرا مردم سوئیس وضعشون از ما بهتره یا مردم فرانسه اینا سامینا وضعشون از ما بهتره الان روز هزار بار خدا رو شکر می‌کنیم وضعمون از مردم سومالی بهتره یا سومالی چرا من بغل گوشم سوریه اینم معجزه انقلابه دیگه کلاً دیگه انقدر فاصله گرفتیم از جوامع غربی که خودمون باش مقایسه نمی‌کنیم هرسم نمی‌خوریم بهترین کار بهترین کار در ادامه بحث تبعیض و تبعیض خانوادگی یه وقت میبینین پسر خانواده کلا در یک سال تحصیلی 7 دقیقه و 30 ثانیه درس خونده حالا مهندس دمپایی سازی بندر خمیر قبول شده پدر و مادر براش جشن میگیرن در حد جشن فارغ و تحصیلی از آکسفورد با سلام و صلوات و جیب پر از پولم رایش میکنن بره اونور بر مثلا مملکت مهندس بشه پدر ملت هم در میارن از بس که این مهندسی تو چش و چار اینو اون میکنن حالا دختر خانواده کلی درس خونده پزشکی چه میدونم توی سرکان قبول شده پدر بغز میکنه مادر قشق میکنه برادر غیرتش به میشه خاله میره پیش دعانویس دعای مخصوص رفع بلای پزشکی توی سرکان بگیره عمه نظرش اینه که این بچه رو زودتر شوهر بدین بره اینقدر سر خودش بلاملا نیاره آقا خلاصی موزل بین المللی درست میشه که این بچه ناموسه نفرسیدش بره باعث اصل کل فامیل بشه یه وقتا یکی نیست بگه بابا دخترتون درس خونده زحمت کشیده رشته مورد علاقهش قبول شده خب خوشحال باشید لام از سبا کمکش کنید بری زندگیشو بکنه درسشن بخونه دیگه نه اینکه به این مناسبت اعضای عمومی اعلام کنید در سطح کل فامیل ای بابا گوشی کی بده کاری که گوش امو خاله این حیوانکی بده کار باشه وقتای آدم برای چیزایی مورد تبعیض قرار میگیره که دست خودش نبوده مثلا اینکه دختر به دنیا اومده یا اینکه بچه وسطی شده که نه مثل بچه اولی بهش اطمینان کنن و مسئولیت بهش بدن نه مثل بچه آخری مدام لوسش کنن حالا فکر کن این آدم دختر وسطی باشه هر جا بخوای بری باید اجازه بگیری در حالی که داداش بزرگه هر جا بخواد بره هر کاری بخواد بکنه لازم نیست به کسی بگه یا مثلا تو به سن گواهی گرفتن رسیدی ولی بابا جاده خلوت که میبینه که تو میده دست خواهر کچیکه که یه وقت ناراحت نباشه بابت تحتاغاری بودن قصد دار میکنه آدم و این تبعیضا دیگه دیشب زنگ زدم سرگی همینا رو بهش میگفتم گفت راست میگی کلن دختر بودن تو خانواده یعنی مورد تبعیض واقع شدن گفتم تو دیگه چی میگی تو که هنوز دست تو جیب مامبابت مشکلی هم نداری گفت دلت خوش شرمینا این مامان بابای من از اون هفته که بهشون گفتم باید پول بدن ماشینم رو عوض کنم دیگه تلفونای دخترشون تک دخترشون رو جواب نمیدن اون وقتی روز داداشه بهشون گفته یه جیپ سهرایی میخواد امروز چکشو دادن بهش گفتم چی میگی سریا کاش همه تبعیزانی مدلی بود مرفع بی درد والا روزنامه روزنامه روزنامه شد. روزنامه آرمان امروز به نقل از آیت الله هاشمی رفسنجانی تیتر زده بود که تندروها ریشه در نهادهای قدرت دارند والا چیزی که ما می بینیم اینه که نهادهای قدرت ریشه در تندروها دارند یا هم از اینجا که ما بایستادیم اینجوری به نظر میرسیم روزنامه بهار امروز از قول آشمی رفسنجانی تیت زده بود فشار توندروها مانند سر و صدای کلاغ هاست شما موازه باشم این کلاغا زیاد فشار بیاد بهشون یه جوری از اون بالا رو سر آدم خرابکاری میکنم با دوش گرفتن هم آثارش رفت نمیشه گفته باشم و روزنامه شهروند امروز تیت زده بود که پنجاه میلیون ایرانی مشکل چاقی و اضافه وزن دارند پنجاه میلیون کلن هشتاد میلیونی ما خدا بده برکت ماشاءالله با هوا اینور ساخته چه خبره خیلی فاز میده بگی ما بیایم من و تو به هم شبیهیم من و تویی که دوسر یک خط یک امتداد یک مبادله نشستیم و حضور همدیگر رو حس میکنیم من شبیه تو هم و اگر شبیه تو نبودم که اینقدر حرف نداشتم که برات بزنم و تو شبیه منی و اگر شبیه من نبودی که حرفام برات یه مشت صوت بیمعنی بود که گوشت رو میازرد و خاصیتی هم نداشت و همین شباهت هاست که امیدوارم راه من و تو رو به هم نزدیک کنه شبیه من، شبیه تو، شبیه ما، شبیه با هم بودن شبیه این شبیه باز هم روی دنیا خیمه زده و تا طلوع صبح مهمونونه مونه شبیه تو پرندی که میرود به سمت خورشید شبیه من ترانی میان شعلای تردید نشستم به انزوان به رنگ و بوی در خلوت نی حضور روشن پیغام نشستم به ز ما در آن گوبوی بی پرام می در حضور روشن پیغام شود خیال من من نگفت باز چه ستیز سینم بی صدا می خان که با سدای تام جواب نمیزنه سروده هری خاوفری نشید بیزم ترن من آبوده منیش که آخران مبوع خرین و تالی در امت داده ارتفاع <تصفيق> میمهارری برم رام توی بما کی سرای بی سر جا